اوریون تازیان زنی برمیگزیند و همچنان که زمستان میفرسود اوریون بارها و بارها به همراه سگهایش به کنار آن مرز شگفتانگیز رفت و تا آن زمان که شفق زمینی ناپدید میشد منتظر ایستاد و گاهی از پای شاخدار با هکل زیبا و سفید شگرفشان را میدید که محتاط و خاموش در سکون دشتهای ما گام می اما دیگر شاخی به قلعه ایرل نیاورد. نیز دیگر در دشتهایی که می‌شناسیم شکار نکرد. چون اسب‌های شاخدار بیشتر از چند گام به درون دشتهای ما نمی‌آمدند و اوریون نمی‌توانست راهشان را به سوی خانه قطع کند. یک بار که سعی کرد این کار را بکند، نزدیک بود تمام سگهایش را از دست بدهد. چندتا تا از سگها ها به درون توده شفق رفتند و به هنگام توانست با تازیانش آنها را بازگرداند. اگر دو گام دیگر پیش می رفتند، دیگر آوای شیپور زمینیش به گوش آنها نمی رسید. از همین جا آموخت، در کنار مرزی که هرکس از کنار آن بگذرد برای همیشه گم خواهد شد، یک مرد نمی تواند بدون کمک سگهایش را حفظ کند، هرچقدر هم که بر سکه نفوذ داشته باشد و هرچقدر هم که این نفوذ جادویی باشد. از آن پس، اوریون مدتی در ارل به تماشای بازی پسر بچه ها به هنگام غروب پرداخت و سرانجام سه نفر را که سرعت و نیرویشان از دیگران بیشتر بود مشخص کرد و دو نفر از آنها را برای بازگرداندن سکه با تازیانه انتخاب کرد. پس از اینکه بازی آنها به پایان رسید و چراغ ها روشن شد به کلبه یکی از آنها رفت که پسرک قد بلند و چابکی بود پسرک و مادرش هر دو آنجا بودند هنگامی که پدر در را گشود و اوریون وارد شد از جا برخاستند و اوریون با مهربانی از پسرک پرسید که آیا حاضر است با او اوسکاهایش بیاید و با تازیانه ای از گریز آنها به درون مرز جلوگیری کند و سکوتی حاکم شد همه می دانستند که اوریون جانوران غریبی شکار می و سگهایش را به جاهای غریبی میبرد. برد هیچ کس آنجا به آن سوی دشتهایی که میشناسیم گام نگذاشته بود پسرک از رفتن به آن سوی دشتهایی که میشناسیم شناسیم می ترسید پدر و مادرش می ترسیدند به او اجازه رفتن بدهند سرانجام سکوت با بحانه ها و جمله های جویده جویده و سخنون ناتمام شکسته شد و اوریون دریافت که پسرک نخواهد آمد. سپس به خانه دیگری رفت در آنجا نیز شام ها روشن و میز غذا آماده شده بود و اوریون به آنان گفت که به تازیان زنی نیاز دارد پس پسرک خواست با او برود. در آن خانه ترس مشخصتر بود زنهای پیر با هم فریاد زدند که پسرک خیلی جوان است که نمیتواند چندان هم خوب بدود که شایسته چنین افتخاری نیست که سگها هرگز نباید به او اعتماد کنند. و آنقدر گفتند که هاشان نامربوط شد. اوریون آنها را ترک کرد و به خانه سومین نفر رفت. اینجا هم به همین ترتیب بود. پیرترها برای ارل آرزوی جادو کرده بودند، اما لمس حقیقی آن یا تنها اندیشه آن مردم را در کلبه هاشان می میلرزاند. هیچ کس حاضر نبود بگذارد پسرش به جایی برود که نمیشناسند و با چیزهای رویارو رو شود که شایعه همچون سایعی خسمانه و عظیم در دهگده ی ارل چنان کسیف جلوهشان داده بود. بنابراین اوریون سکهایش را از دره جمع میکرد و تنها و از میان دشتهای ما به سوی شرق به جایی میرفت که مردم زمینی نمیخواستند بروند. بهار بود؟ یک روز صبح اوریون که در برجش خفته بود صدای طاووس‌ها را واضح و روشن از پایین شنید. صدای ببعی گوسفنداں نیز برای بیدار کردنش فرا رسید و خروس‌ها حیاهوکنان قوقلی قوقو گوغو کردند. چون بهار داشت در میان هوای آفتابی ترانه میخواند. برخاست و به سوی سگهایش رفت و کمی بعد کاریران او را دیدند که به همراه سگهایش همچون لکه‌های قهوه‌ای در میان سبزی از سراشیبی در بالا می رفت و بدین ترتیب از میان دشتایی که میشناسیم گذشت و بدین ترتیب پیش از غروب آفتاب به خطهی رسید که همگان از آن روی میگرداندند. جایی که در غرب آن خانه های ها در میان دشتایی از حاک حاصل لمیده بودند و در شرق آن کوه‌های سرزمین پریان بر مرز شفق می‌درخشیدند. با سگهایش در درازای آخرین پرچین به سوی مرز حرکت کرد و در همان هنگام روباهی را دید که از شفق بین زمین و سرزمین پریان بیرون خزید و چند متری در طول لبه دشتهای ما دوید و سپس دوباره به درون شفق خزید. پاوریون چندان به این ماجرا نیندیشید چون این شیوه روباه هاست که چونین بر لبه سرزمین پریان گذر کنند و دوباره به دشتهای ما بازگردند. برای همین است که روباه چیزهایی برای ما میآورد آورد که هیچ کدام از شهرهای ما درگمان نمی گنجاند. اما دوباره روباه در بیرون شفق پدیدار شد و کمی دوید و دوباره به درون مرز نورانی رفت. سپس اوریون نگاه کرد تا ببیند روباه چه می کند و روباه دوباره در دشتهایی که میشناسیم ظاهر شد و دوباره به درون شفق رفت. و سکه ها هم تماشا می کردند و هیچ علاقهی برای شکار او نشان نمیدادند چون خون ای را چشیده بودند اوریان که کنجکاویش دم بدم از رفت آمد روباه بیشتر می شد در کنار شفق در جهتی براه افتاد که روباه حرکت کرد سکه ها آهسته به دنبالش رفتند و خیلی زود علاقهشان را به آنچه روباه می کرد از دست دادند و ناگهان موضوع کنجکاوی برانگیز روشن شد چون لورولوی جن ناگهان از میان شفق بیرون پرید و در دشتهای ما ظاهر شد روباه با او بازی میکرد. لورولو با صدای بلند و به زبان جنی به خودش یا شاید رفیق روباهش گفت یک انسان و ناگهان اوریون جنی را به یاد آورد که با جادوی کوچکش بر علیه زمان به درون کودکستانش آمده بود و از قفسهای به قفسه دیگر و به روی سقف پریده بود وزیر اوندرل را که نگران آشپزخانهاش اش بود خشمگین کرده بود گفت آن جن و به زبان جنی گفت چون در کودکی مادرش به هنگام گفتن داستانهایی درباره جنها و ترانه های این زبان را برایش زمزمه کرده بود لورولو گفت این دیگر کیست که زبان جنها را می‌داند. و اوریو نامش را گفت که هیچ معنایی برای لورولو نداشت اما چون باتمه زد و مدتی در چیزها که در جنها معادل حافظه ماست کاوش کرد و در تیه جستجویش در میان خاطرات پیش پا ای که از ویرانگی زمان در دشتهایی که میشناسیم در امان مانده بود و بی تفاوتی های بیشمار دوران های بیدگرگونی سرزمین پریان ناگهان به خاطراتش از ایر رسید و دوباره به اوریون نگریست و رفته رفته او را شناخت و در همین زمان اوریون نام شکوهمند مادرش را به جن گفت ناگهان لورولو کاری را کرد که در میان جنهای سرزمین پریان سجده بر پنج نقطه نامیده می شبد. یعنی بر روی دو زانو دو دست و پیشانیش به خاک افتاد سپس دوباره با جهشی بلند از جا پرید چون به جای آوردن احترام چندان با روحیش سازگار نبود اوریون گفت در دشت انسان‌ها چه می‌کنی؟ لورولو گفت: بازی؟ در سرزمین پریان چه کنی؟ گذر زمان رو تماشا میکنم. این کار برای من سرگرم کننده نیست. شما تا کنون این کار رو نکردین. در دردهای انسانها نمیتونین گذر زمان رو تماشا کنی. چرا که نه؟ چون خیلی تند حرکت میکنه. اوریون کمی به این موضوع فکر کرد، اما چیزی نفهمید. از آنجا که هرگز از دشت هایی که میشناسیم بیرون نرفته بود، تنها یک گونه گذر زمان می شناخت و بنابراین راهی برای مقایسه نداشت. جن پرسید از اون زمان که در ایل با هم صحبت کردیم چند سال بر شما گذشته؟ اوریون گفت چند سال؟ جن حد سد صد, صد سال؟ اوریون گفت نزدیک که سال و تو؟ جن گفت هنوز امروزه با اوریون دیگر نمیخواست درباره زمان صحبت کند چون خوشش نمیامد درباره موضوعی بحث کند که به ظاهر کمتر از یک جن معمولی دربارهاش میدانست. اوریون گفت حاضری تازیان برداری و هنگامی که در درش هایی که میشناسیم به شکار اسب شاخدار میریم به همراه سگام بدوی. لورولو کاوشگرانه به سکانهگرری است چشم را نگاه کرد سگها ها با سو ازن پوزه را به سوی جن برگردانده بودند و جستجوگرانه بومی کشیدند. جن گفت اینا سگن. گویی سگ بودن آنها بر علایهشان بود. اما افکار دلپذیری دارند. اوریون گفت پس تازیانه رو حمل می جن گفت م... بله بله. بنابراین اوریون تازیانی خودش را به او داد و شیپورش را به صدا درآورد و از شفق دور شد و پلورولو گفت سکهایش را کنار هم نگه دارد و به دنبالش بیاورد و سکها از دیدن جندل خور بودند و پی, پی بو می اما هر کار می کردند نمی توانستند باور کنند که یک انسان است و خوششان نمی آمد از موجودی که از خودشان بزرگتر نبود فرمان ببرند از روی کنجکاوی دورش جمع شدند و با دلخوری از روی نافرمانی از او دور شدند اما مخالفت با مایه های بی حد و مرز آن جن چابک آسان نبود و تازیانه‌ای که در آن دست کوچک سه برابر بزرگتر می‌نمود ناگهان بالا رفت و پایین آمد و به نوک بینی یکی از سگها خورد سگ واق واق کرد و گیج شد بقیه هنوز دلخور بودند شاید این رویداد را یک تصادف دانستند اما دوباره تازیانه به صدا درآمد و به نوک یک بینی دیگر خورد و سگها دریافتند که آن ضربه های دردآور تصادفی نیستند، بلکه کار یک تیز بینی مرگاور و خطا ناپذیر است. از آن پس به لورولو احترام گذاشتند هرچند هیچ بوی انسان نمیداد. بدین ترتیب اوریون و گروه سگهایش در دیر هنگام غروب به سوی خانه بازگشتند و هیچ سگ گله در یک دشت سکونتگاه گرگ ها به خوبی لورولو از گلهاش به خوبی حفاظت نمی هرگاه سگی پرت می‌افتاد، لورولو درست پشت سر یا کنارش بود و می از یک سمت گروه سگ ها را به سمت دیگر به جهانت و پیش از آن که اوریون بیشتر از صد گام از مرز دور شود کوه‌های آبی روشن سرزمین پریان از نظر محف شده بودند چون چکات با تاریکی زمینی که بر فراز دشت که میشناسیم میگسترد پنهان شده بودند. به سوی خانه رفتند. کمی بعد ستارگان سرگردان بیشمار پدیدار شدند. لورولو گاه به گاه به بالا مینگریست و از دیدن آنها شگفت زده می شد. همانگونه که همه ما گاهی این کار را کرده ایم. اما در بیشتر مواقع توجهش را بر سگها متمرکز می‌کرد. چون اکنون که در دشتهای زمینی بود به چیزهای زمینی اهمیت میداد. و هیچ سگی از گروه دور نیفتاد که ضرب تازیانه لور و لورا احتمالاً بر نوک دومش و به همراه پراكنده شدن غباری از موهایش نچشد. و با چشیدن این ضربه سگ فراری واقع کنان به میان دیگران میدوید و دیگران در می كه که یکی دیگر از آن ضربه های به هدف برخورد کرده است. هنگامی که کسی زندگیش را وقف حمل تازیانه در میان سکها کند در هر ضربه اش گونه ای دقت و گونه ای اطمینان از هدفگیری پدید می‌آید. در طی 20 سال پدید می آید. شاید در طول 20 سال و گاهی این دقت به طور ذاتی در یک خانواده وجود دارد و این بهتر از سالها تمرین است اما نه سالها تمرین و نه خوی ذاتی به تازیانه می تواند هدفگیری دقیق چیزی همچون جادو را داشته باشد آن تکان تازیانه به سرعت یک چشم برهم زدن و برخورد آن به هدف درست در نقطه مورد نظر از آن این زمین نبود و هرچند ممکن بود ضربه های آن تازیانه چیزی بیشتر از کار یک شگارگر ننماید اما همه سگ ها می دانستند که در این ضربه ها چیزی بیش از این نهفته است چیزی از ماورای دشتهای ما هنگامی که اوریون دوباره روستای ار را دید تلیعه سپید دم در آسمان پدیدار شده بود و ستونهای دود از اجاقهای درون دره به آسمان برخواسته بود و با سگهایش و تازیان زن جدیدش از دیواره دره پایین میآمد هنگامی که از خیابانها میگذشت و در سکوت و سرما به سوی لانه های خالی سگها میرفت نخست پنجره ها به سویش چشمک می زدند هنگامی که همه سگها بر روی توده های کاهشان لمیدند جایی برای لورولو پیدا کرد. انباری پوسیده پر از بسته و چند توده یونجه از ای که بالای آن قرار داشت چند کبوتر بیرون پریده بودند و بر روی تیرهای عرضی سقف نشسته بودند. اوریون لورولو را آنجا گذاشت و به برجش رفت. سردش شده بود و به غذا و خواب نیاز داشت و چنان خسته بود که اگر یک اسب شاخدار یافته بود چنان خسته نمیشد. اما با سر و صدایی که جن هنگام بازی در کنار مرز بپا کرده بود منتظر آن جانوران ماندن در آن غروب بیفایده بود اوریون خوابید اما جن مدت درازی در انبار پوسیده نشست و گذر زمان را تماشا کرد از میان ترک‌های دیوارهای کهنه دید که ستارگان حرکت می کنند، دید که کم رنگ شدند، دید که نور دیگری گسترد، شگفتی طلوع را دید، ملالت کبوتر خانه پر از بغبغوی کبوترها را حس کرد، شیوه های بیقرارشان را تماشا کرد، صدای پرندگان وحشی را که در میان نارونهای سرخ در نزدیکیشان می پریدند. و صدای انسانها را که بامدادان از خانه بیرون می رفتند. و صدای عصب ها و گاری ها و گاو ها را شنید و دید که همه چیز به هنگام گستردن بام داد دگرگون می شود سرزمینی از دگرگونی گویی تخته های فرسوده درون انبار و ساروج های پوشیده از خزه و تیرهای در حال پوسیدن همه یک داستان را باز می گفتند دگرگونی پی در پی و بدون پایداری به آرامش سالی که نگهبان زیبایی سرزمین پریان بود و سپس به طایفی جنها که ترکشان کرده بود اندیشید شگفت زده از این که درباره شیوه های زمین چندیشهی ای خواهند داشت و کبوترها ناگهان از صدای قاه, قاه وحشی خنده لورولو حراسان شدند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها عت های زیبا و نام رودخانه ها و برکه های جادویی قصرهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه سه از سفرهای دور و دراز با پای پیاده،